زمستان 1928 که هشت ساله بودم، پدر و مادرم از هم جدا شدند و مادرم آخرهای بهار همان سال با بابی آگاگانیان عروسی کرد. یک سال بعد، توی بحران والستریت، بابی دار و ندار خود و مادرم را از دست داد و ظاهراً تنها چیزی که برایش ماند اصای شعبد بازیش بود. اما بابی، دلال بیکار سهام و اشرت طلب آسمان یک شبه نماینده و عرضی فعال کانون نمایشگاه های هنر مستقل آمریکا و موزه های هنرهای زیبا شد. بیان که انقدر ها سررشته از این کارها داشته باشد. چند هفته بعد، در اوائل 1930، جمع سه نفری کما بیش ناجور ما از نیویورک به پاریس اسباب کشی کرد. بیشتر به این منظور که کسب و کار جدید بابی رونق نخ بگیرد، این اسباب کشی بر من که در آن وقت ده ساله بودم و بی خیال نمی گویم سر به هوا تأثیر بدی نداشت. اما نه سال بعد یعنی سه ماه پس از مرگ مادرم اسباب کشی دوباره به نیویورک چونان زربهی به من زد که خورد کننده بود. حادثه مهمی را که یکی دو روز پس از ورود من و بابی به نیویورک برایم پیش آمد به یاد دارم. تو یک اتوبوس شلوغ خیابان لکسینگتن پشت به پشت مسافر دیگری ایستاده بودم و دستم را به میله‌ی لوآبی نزدیک صندلی راننده گرفته بودم. راننده به ما مسافران که نزدیک در جلو جمع شده بودیم با لحنی گستاخانه چند بار گفت: "بروید عقب ماشین." بعضی از ما سعی کردن حرفش را گوش بدهند. بعضی هم تکان نخوردند. دست آخر راننده که از کور در رفته بود پشت یک چراغ قرمز روی صندلی چرخید. سرش را بلند کرد و به من که پشت سرش بودم خیره شد. در آن وقت نوزده ساله بودم. کلاه نداشتم. موهای صاف و را که خیلی تمیز نبود به سبک اروپایه ها بالا زده بودم و یک قسمت کوچک از پیشانیم پر از جوش بود. راننده آهسته و با لحنی کما بیش محتاط به من گفت با تو هستم داداش. اون هی کل قناستو ببر عقب گمان می کنم کلمه داداش بود که مرا عصبانی کرد. بنابراین بیان که ذره ای جا بخورم یعنی به جای اینکه مثل او گفتگو را به صورت خصوصی درآورم و خوش‌ذوقی نشان بدهم به فرانسه گفتم که مردک کله شق احمق از نمی نمی‌خوام سر بتند باشد آن وقت با اندک غرور قدم زنان به انتهای اتوبوس رفتم کم کم وضع بدتر شد یکی دو هفته پس از آن بعد از ظهر یک روز از هتل ریتز که من و بابی برای مدتی نامحدود اتاق گرفته بودیم بیرون آمدم. به نظرم رسید که همه صندلی های, های نیویورک را از جا در و بردند توی خیابان چیدند و مردم همه سرگرم بازی صندلی آهنگند. گمان میکنم که اگر مسئولان کلیسای منحتن، پروانه افتخاری ویژه‌ای به اسم من صادر میکردند و در آن می نوشن که شرکت کنندگان بازی به احترام من پاپه ایستند تا من سر فرصت روی یک صندلی بنشینم، می رفتم در بازی شرکت میکردم. اما وقتی دستگیرم شد که این کار خواب و خیال است، کاری عملیتر آرزو کردم. دعا کردم که شهر از آدم خالی شود، تا من از نعمت تنهایی، تنهایی برخوردار شوم. این تنها دعایی است که در سلسله مراتب امور، نه هرگز فراموش می شود و نه به تأخیر می افتد. در یک چشم هم زدن به هر چه دست می زدم، به تنهایی مجسم تبدیل میشد صبحها و اوایل بعد از ظهرها در یک مدرسه هنری نقش خیابان چهل وهشتم و لکسینگتن که حالم را به هم میزد حضور پیدا میکردم البته حضور جسمی یک هفته پیش از اینکه من و بابی پاریس را پشت سر بگذاریم در نمایشگاه ملی جوانان گالری های فریبورگ سه مدال اول را به دست آورده بودم سرتاسر سر سفر دریاییم به آمریکا. در آینه اتاق که کشتی محب تماشای خود که شباهت جسمی غریبی با ارگکو پیدا کرده بودم میشدم. هفته‌ی سه بعد از ظهر دیروق را روی صندلی دندان پزشکی میگذرادم که در مدت دو سه ماه تا از دندان‌هایم را که ستایشان دندانهای جلو بود کشید. دو بعد از ظهر دیگر را معمولا توی نمایشگاه های نقاشی به ویژه نمایشگاه های خیابان پنجاه و هفتم پلاس بودم و با تماشای نقاشی‌های آمریکایی تنها کاری که نمی تف انداختن به با آنها بود. عصرها معمولاً مطالعه می کردم. یک دوره کامل رومانهای کلاسیک هاروارد را خریدم. صرفاً از سر لجبازی و بابی که می گفت توی اتاق هتل جایی برای آنها نداریم و تقریبا با کل شقی هر پنجاه جلد را خواندم. شبها تقریبا بدون وقفه سپایم را میان دو تخت دو قلوی اتاق خواب خود و بابی می گذاشتم و میکردم. آنطوری که از یادداشت‌های من در 1939 برمی آید، فقط در یک ماه ده تابلوی رنگ و روغن کشیدم. نکته جالب توجه این بود که ده تا از این تابلوها تصویر خودم بود. اما گاهی که تخیل من حوث باز می شد، را کنار می گذاشتم و کاریکاتور می کشیدم. یکی از آنها را هنوز که هنوز است دارم. این کاریکاتور دهن قارمانند مردی را نشان می‌دهد که در کنار دندانپزشکی دیده می‌شود. زبان مرد یک اسکناس صد دلاری معمولی بانک آمریکاست. دندانپزشک با لعن قمنگیز به فرانسه می‌گوید: گمان می‌کنم که دندون آسیا رو میشه نجات داد، اما متأسفانه این زبون چاره‌ای جز بیرون آوردن نداره. این کاریکاتور به راستی مورد علاقه من است. من و بابی که هم اتاق بودیم روابطی مثل سگ و گدا با هم داشتیم و پس از گذشته هفته ها که به تدریج پی بردیم هر دو شیفته یک زن بوده که از دنیا رفته دیگر میانه ما شکراب شد و به دنبال این کشف بود که چشم دیدن یک دیگر را نداشتیم. وقتی هم در آستانه در حمام سینه به سینه می شدیم لبخندی زورکی تحویل هم می دادیم.